رامین منبر مساجد ایران زریفتر و زیباتر از منبر در کشورهای دیگر است. این منبر تزین جالبی دارد. به این هنر چه می‌گویند؟ به این هنر منبتکاری می گوییم. یعنی روی چوب کندکاری می کنیم. منبت هم یک هنر قدیمی ایرانی است؟ بله. در شهر فسا در فارس، منبتکاری پنج هزار ساله وجود دارد در به این مسجد هم کاری شده است؟ نه به این هنر معرق میگوییم معرق هم هنری مربوط به وسایل چوبی است منبت و معرق چه تفاوتی دارند؟ منبت کندکاری روی یک قطعه چوب بزرگ است ولی انگار در معرق این چوب کوچک را به هم چسباندند؟ بله، تکه چوب های رنگی کوچک را می‌برند و روی چوب اصلی می چسبانند. رنگ این چوب هم متنوع و زیباست؟